هشتم برای تاکسیماکسی تاکسی دیر وقت بود تا ایسکا پیاده رفتن همچینم دور نبود ولی هوا اینقدری سرد بود که سگ لرزه به جونت میداخت برفم را رفتن را سختر کرده بود ساک هستی مدام میخوردم به پام ولی خب هوا یه جورهی داشت بهم حال میداد. مشکلم با سرم این بود که میخورد به دماغم و زیر لبم که زخمی شده بود و درد می‌گرفت. لطفاغی استرد لیتر بود دیگه. طوری زده بود که لبم خورده بود به دندون راستی و حالا خیلی میسوخت ولی گوشام گرم و راحت بودن. کلام رو گوشی داشت. اهمیتی هم نمیدادم دیگران بگن چرا این ریختیه. از اون وقت شبم دیگه کسی در کار نبود. همه کپیده بودن. شانس آوردم تویسکا دیدم یه ده دقیقه دیگه ای قطار میرسه همونطور که منتظر بودم از روشونه هم پرفارم میتکندم و صورتم و تمیز میکردم هنوز یه کمی خونی بود از قطار سواری خوشم میاد به خصوص سفرهایی قطاری شبونه وقتی چراغ کوپه روشن میشه و پنجره سیاه میشن و اینایی که قهوه و ساندیویج و مجله میفروشن را میفتن تو راهروی راه قطار معمولانم ساندویچ گوشت و گراز می میخرم با چهار تا مجله اگه شب باشه میتونم بدون حالبدی یکی از این داستانهای احمقانه رو بخونم همین داستانه احمقانه ای میگم که مثلا درباره یه یارویی به اسم دیوید که دورش کلی دختری جنگل مینگل هستن که پیپاقا رو وسهش روشن میکنن معمولا زورم میرسه شبونه یکی از این داستان رو بخونم ولی این بار فرق داشت واقعا حال خوندن نداشتم نشستم هیچ کاری نکردم فقط کلمو برداشتم گذاشتم تو جیبم توی سکای ترنوت سرکله یه خانومی پیدا شد و اومد نشست کنار دستم چون دیر وقتی نبود کل واگن خالی بود و با این وجود عوض اینکه که جای خالی بشینه عد اومد نشست کنار دست من چون هم چمیدون بزرگ امراش بود همین که من ردیف جلو نشسته بودم چمیدونشون همونجا وسط راه رو گذاشت جایی که مسئول مسئ زن جذابی به نظر می رسید انگاری داشت از مهمونی چیزی برمی گشت یه چل چل پنج سالی و داشتم اونم ولی خیلی جذاب بود باید زن آشق زنام جدی میگم. نه نه نه منظورم این نیست که اهل اون کارو هستم یا همچین چیزی البته بعدم هم نمیاد ولی میخوام بگم ازشون خوشم میاد همیشه چمدوناشون رو ویل میکنم وسط راه قطار بیخیال نشسته بودیم که بی هوا گفت ببخشین اون آرم مدرسه پنسیه که چسبوندی به ساکت داشت به ساکم که بالای باربن بود نگاه میکرد بله خانم درست دیده بود یکی از اون بودیم مسخره پنسی و چسبونده بودم به ساکم لوس و مسغرست می تو اونجا درس خوندی؟ خوش صدا بود از اون صداهای تو دل پشت تلفنی. بعد هر جا می رفت یه گوشیه تلفنم با خودش می برد بله خانم وای چقدر خوب حتما پسرم ارنت رو می شناسی؟ اونم میره پنیسی بله خانم هم کلسیمه شک نکن پسرش یکی از عوضی ترین عوضیایی که پنیسی نکبتی به خودش دیده همیشه خدا بعد از دوش توی راه رو دوره میفته و شطلق هولش و حوالی بقیه میکرد طرف همچین گل پسری داشت چقدر خوب چقدر خوب شرکی نبود زن مهربونی بود باید به ارنس بگم تو رو دیدم اسم چی عزیزم؟ رودولف اشمیت حالا داشتم بشینم براش داستان زندگیم تعریف کنم رودولف اشمید اسم خدماتی خوابگاهمونه. از پنسی راضی هستی؟ از پنسی بد نیست خانوم بهش نیست ولی بده کم نیست بعضی از کارمنداش خیلی خوش برخورد و وظیفه شناسن ارنست که عاشق اونجاست <تصفح> میدونم خانوم بعدم شروع کردم به شهر رو اربافتن که اون خودشو خیلی خوب وقف میده یعنی خیلی خوب اون خیلی خوب بلد خودشو و شرعیت وقف بده گفت جدی فکر میکنه اینجوریه دیدم که نه جدی جدی خیلی مشتاق شنیدنه ارنست خب بله بعد دستکشش رو در پسر دستش پر انگشتتر بود از تاکسی که پیاده میشدم ناخونم شکست نگاهم کرد و لبخند زد لبخند شیرینی داشت خیلی شیرین خیلی لبخنداشونم جلیه البته اگه خبر مرگشون لبخندی هم داشته باشن منو پدرش نگرانشیم. نشیم فکر میکنیم زیادی منظویه منظورتون چیه؟ خب اون خیلی احساساتیه زود با بقیه پسر رو جوش نمیخوره گمونم هم یکم همیچوی جدی تر از سنی که توشه میگیره احساساتی <تصفيق> ته چرند بود این بابا اندازه بزم حالیش نیست احساسات نگاه بزرگوارانه ای تحویل خانم دادم شبیه آدم خنگا نبود به نظر میرسید قشنگ میدونه مادر چه جونوریه ولی خب شاید من اشتباه میکردم آدم با مادر کسی نمیتونه راحت شوخی کنه معمولا مادر رو زود قاتی میکنن ولی موضوع اینجاست که مادر این بابا به دلم نشست خلو چل نمیزد ازش پرسیدم که سیگار میکشین به اطراف نگاه کرد و گفت رودولف اینجا که کپه مخصوص سیگار نیست رودولف داشتم زخ مرگ میشدم اشکالی نداره میتونیم تا چیزی نگفتن سیگار بکشیم تذکرم دادن دادن از هم یه سیگار گرفت و بعد من براش روشنش کردم. سیگار کشیدن بهش میومد. دودو تو میداد ولی برعکس زنهای همسن و سالش تا ته نمیداد. خیلی خانم نازی بود. راستش آدمو حسابی جذب میکرد. یه جوری تماشاام میکرد. هایی گفت شاید اشتباه میکنم ولی انگار داره از دماغت خون میاد. حرفشو با سر تعیید کردم و یه دستمالی درآوردم. بردم با گوله زدن تو بینیم توش حسابی یخ بود دوست داشتم براش تعریف کنم که چی شده ولی خیلی طول میکشید ازش خوشم اومده بود و میخواستم براش بگم همینجا بود که گفتم کاش نمیگفتم اسمم رودولفش و شما میدونستین آقا ارنیتون یکی از بچه معرفای پنسیه؟ نه نمیدونستم براش سر تکون دادم که اولش خیلی طول کشید تا همه بشناسنش. آدم باحالیه. البته اولش خیلی غریب بود. میدونین منظورم چیه. مثلا بار اولی که دیدمش میخورد از این بچه های باشه که خیال میکنن از دماغ فیل افتادن. به نظرم اینطوری میومد. ولی اینطوری نبود. پسرتون بچه هی با اصل و نسبیه که شناختنش اولش یکم طول میکشه. خانم مرا حرفی نزد ولی بعد می میدیدی در هر جا می خوبش کرده بودم پسر. کافی بود برای مادری بگی که پسرش چه آدم تو ویترینیه. بعد دوباره شروع کردم به شعر بافتن. بهتون از انتخابات نگفته از ماجرای انتخابات کلاس تکون داد. سوژه بکری برای دست انداختن پیدا کرده بودم. خب یه سری از ما خواستیم ارنی نماینده کلاسمون بشه. انتخابمون رو اعلام نکرده بودیم اون تنها پسری بود که از عهده این کار برمی اومد خالی این مدلی دیده بودی ولی تو کلاس یکی بود به اسم هریف انسر که انتخاب شد ریلیش هم ساده بود ارنیه شما نذاشت نامزدش کنیم اینقدر که این بچه فداکار بود نگاش کردم و گفتم بهتون نگفته نه نگفته سر تکون دادم که ارنیه شما همچین بچهیه آدمیه که نمیگه ایرادشم هم همینه به نظر من زیادی باهی و خجالتیه بعد یکم تو این طور موارد راحت تر برخورد کنه به نظر من همین که ممور قطار اومد بلیط خانم مورو رو چک کنه من از چرند بافی انداخت البته گفته باشم از این چرندیاتی که بافتم بعدم نیمد بعد نیست هر از ازگاهی چرند به بافی تا وقتی یاروی این مرا هست که با حولهی خیس به جنادمما میفته و اصلا به روی خودش نمیاره که چقدر کارش درد داره اینطور چرند بافیا آزاده آدمی که بچه گیشین باشه وای به روزی که بزرگ بشه اینا تموم عمرشون همین عوضی که بودم میمونن ولی شرط میبندم با شعهایی که من بافتم خانم مرو رو به سر عزیزش و بچه خجالت با باهیایی تصور میکنه که حتی روش نمیشه نامزده زده کلاس باشه شاید اینطوری فکر کنه. چه میدونم. مادرها خیلی توی اینجور جور مسائل تیز نیستن. گفتم دوست دارین چیزی بزنیم؟ خودم هوس کرده بودم. میتونیم بریم واگن بوفه، بریم؟ مگه به تو هم می فروشن حرفش از روی استاد چوسوازی نبود. آدم مهربونی بود. از این استاد ها نبود. خب نه راستش نه ولی گول رو میخورن تازه موهامم یکم سفید شده سرمو برگردوندم و موهی سفیدم و نشونش دادم پسر کفش بریده بود <تصفح> بیاین بریم چرا نمیاین دلم میخواست کنارم باشه گمونم نیام بهتره خیلی ممنون بابت دعوتت ولی گمونم الان بوفه بسته است خیلی دیره حق داشت یکی او یادم رفته بود بعد نگام کرد و ازم همونی همونیو پرسید که میترسیدم ارنس نوشته بود از چهارشنبه که تعطیلات عیده میاد خونه امیدوارم برای خونوادت مشکلی پیش نیومده باشه که داری الان برمیگردی اینم از روی دلسوزی میگفت باور کن اصلا از این استاد چسها نبود نه، خونه بادم همه خوبن. من مشکل دارم. باید عمل بشم. وای خدای من، چقدر بعد بازم از روی دلسوزی بود. اینقدر جدی گرفت که دلم سوخت. ولی خب حرف از دهنم در رفته بود دیگه. چیز مهمی نیست. تو سرم یه تومور در اومده. وای خدای من. دستشو گذاشت جلوی دهنش. گفتم آروم باشین چیزی نیست کنار مغزه خیلی ریزه یکی دو دقیقه ای درش میارن بعد برای اینکه بیشتر از این تر نزنم شروع کردم به خوندن برنامه حرکت قطارو که چپونده بودمش توی جیبم کافی بود شروع کنم به چرند بافی و وقت این کرم میفتد به و تا ساعت و بعد همینطور ادامهش میدادم بعدش دیگه حرفی نداشتیم شروع کرد به خوندن مجله ووگو، من هم از پنجره زل زدم به بیرون. بیسکای بعدی هم پیاده شد. گفت: عمل جراحی خوبی داشته باشی. بعدم برام آرزوی موفقیت کرد. مودام رودولف صدا کرد بعد دعوتم کرد تا بسونو برام دیدن ارنی توی گلاچستر ایالت ماساچوست. گفت خونشون کنار ساحل و زمین تنیس داره از این حرفا. ولی ازش تشکر کردم و گفتم بعد با مامان بزرگم برم امریکای جنوبی چاخانترین قسمت چاخانم همین بود چون مامان بزرگم بزور پاشه از خونه بیرون میذاره بهزور که میگم یعنی از اون بزورا مهم این بود که حتی اگه بدبختترین آدم دنیا بودم و بر داشتن سر تا و تلو میگرفتن بازم حاضر نمیشدم قیافه نحسین یا رو مرویو ببینم